همراه سلام گرم و درود پاک و پرخلوس شادباش های سمیمانه خود را به مناسبت حلول اید سعید فطر تقدیم میداریم ویژه این روز بزرگ و شکوهمند برنامه ترتیب داده با شرکت شاعر ارجمند آقای پژمان بختیاری و عدیب دانشمند آقای زیاودین سجادی و این بند نیز در پایان شعری از سرودهای خودم تقدیم خواهم داشت خونرمندانی که به شور و حال و گرمی و شکوه این برنامه خواهند افزود عبارتند از آقایان، ایرج، فرهنگ شریف، اصدالله ملک، مجید نجاهی و جهانگیر ملک کهیه کننده این برنامه هم آقای عباس تهرانی هستند خب جناب پجمان از جنابالی شروع بکنیم یا از آقای سجادی البته از جنابالی دکتر سجادی شما قبول ادایه شدید من بشا. اطاعت میکنم ولی اگر که جناب پجمان اول مستفیز کنند که ما هم استفاده بکنیم که هم میکنن بهتر باشه برای که ایشان واقعا سجاد تقدم دارند و شاید ایشون شروع کنم. من اینطور فکر می کنم بسیار خب. پس بله. بدون اینکه وقت رو به تعلل بگذارونیم، از آقای پژمان شروع می‌کنیم. ولی اجازه خود من به شنوندگان عزیز یک سابقه بدم که آقای پژمان چه خواهان گفت قبلاً یعنی ازشون چی تقاضا کردیم بله فر. ایشان بنا بود که تحریقی بفرمایند در باره شاعرانی که در زمینه عید ای فطر و رفتن ماه سیام اشعاری دارند و ضمناً قرار شد خودشون هم شیء به مناسبت از خودشون در این برنامه بفرمایند. سرکارم آقای سجادی همین خواستم که با تحقیقات وسیعی که در شعر ادب پارسی دارید زمینه‌های خوب خوبی در این شرش. باره بفرمایید. و حالا از آقای پژمان شروع می‌کنیم. باید بشنویم که جناب آقای دکتر سجادی ما اون همه فضائل و تحقیقاتی که درباره ادب فارسی کردند مخصوصا مقدمه ای که بر خاقانی نوشتن باید. و تعلیقاتی که بر دیوان خاقانی افزیدن شایستر بود که ایشون شروع بفرمویند اما چون دستور فرمویند و شما هم همینطور اطاعت میکنن و شمعی داریم نورد صحبت میکنم شعران فارسی گوه به طور کلی وقتی که میخوان از اید صحبت بکنند با خطاب محبوب و ساقی و تغازه شراب قصائد یا قزلیات خودشون را آغاز می کردند اینکه بسیاری از اونها به حکم حرمت شراب و حفظ عوامر شریعت اسلام هرگز لب برلب جام ننهاد بودند یکی از نظامی گنجوی است که می دونیم در وصف مجالس اشتر خاصه در خصوشیدین سخند به حد اعجاز بسندن با این حال هرگز می ننوشیدن داره. و در اسکندرنامه خود که متاسفانه من اون رو دوست ندارم به تاسف میخورم اوه. اوه. چنان سخنی در وصف چنان مردی شاید. سرده شده است ولی به هر حال کتابیست از اشون و در اونجا در همین موضوعی ترس کردم یعنی می نخوردن اشون میگوید که نتن نتندار یک خضر فرخنده پیک از این می مراه هست مقصود می اوه. از این می همه بیخودی خواستم از وزان بی خودی مجلسان هستم وگر نه بیزدن که تا بودن به می دامن لب نیایدن و من بنده ایمان دارم که جلال الدین محمد بلخی مولوی معروف که در قزلیات پرشور دیوان کبیرش پیوسته هم از میخاری میزنه و میگوید من مسروط دیوانه ما مارا کبرت خانه میگوید چیست در این شهر که اون مست نیست و همچنین گایم اشترون کنم می فرماید این بار سرمست آمدم تا جام و ساغر بشتنم هم از اون جمله است و همه خارگی نفرمونه مخصوصاً مخصوصا این شاعر روزی گرفتن رو گاهی حمل و جدایی از معشوق میکنه مثلا در این قضایر می گوید نومید مشون ممشوق. جانا کمید پدید آمد امید همه جانها از غیب رسید آمد و بالاخره ای روزی گذشته تو از مائده بالا روزه بگو شا خوش خوش کن قوره عید آمد بله این روش شهر بوده فرمان مثلا شاعر بی معشوقه این معشوقی نداشتم تو که میدونی این معاصرینم بودگای ما در قرمالای بی مشروب ها هم... بی مشروب و شاعر بی مشروغ این شاعر معشوق بله بوده ولی بی مشروب بوده بله این از اوناش بله, بله. این باید. روش شوعره بوده به اون را حتی در ایید فتر هم تغییر نمیدادند. در صورتی که اید فتر در حقیقت برای سپاسگزاری از خدای است که آنان را توفیق اطر بوده تا ماه روزه طبق موازین شریعت غذای محمدی باید. به پایان برشونند و در عبادت قصور نورند. خلاصه شوهره با اینکه ماه روان را رو حرمت میذاشتند و ستایش میکردن، هنول اید را با زبان رندی بیان می کند و پای ساقی و مطرب و می را پیش میکشند کشند اون که شعرهای محاصر هم غالبا یعنی حقیقتا از کنم تقریبا همیشه دست از سر ساقی و مطرب و چنگ و چغانه و بربد یعنی چیزهایی که تقریبا امروز ما نمی بینیم در هیچ جا بر نمی در حالی که هیچی از اینها به خصوص در دخمه می خاران وجود نداره در کالباس عرمه و محمل بوهی نه ساغهیست جایی مقبچه هم گارزونه بله ولی چه گارزون هایی بله نه ساغهیست خلاصه نه مطرب نه سنگ نه سقانه و نه بربر جهست. حتی نمیدونیم اینا کدوم چه شکلی دارن سن بربر چه بونه سازی بوده است. اینا از گذشتگان نوت برداشتن بله <تصفح> بله اما شعرهای پیشیم که سراب از دست و گوش به آواز چنگ می سپردن در ایتفت همچنین می گردن مثلا فتولاخان شیبانی اول با حیرت می پرسد رمزان رخت مگر بست که بچود به فال مرق زرگین شبه اید یکی نیمه زبال بلاخره معشوقه یا ساغیر مخاطب شخته میگه گه ای سنم امشب ما را به دو سه جام نبید از مهر روزه بشوی از دل زنگار ملال مجمر زوارهی با شادی خاصی سخن حافظ رو به زبان دیگر تکرار میکنن المنت و لله که بدل گشت دگر بار سجاده به پیمانه و تسبیح به زنار رفتن که گشودن در سومعی شیخ رفتن که ببستن در خانه خمار مزرد مامای پجمان این مجمر اسفانی یا به قول حضرت علی و دیگران مجمر زوارهی کردوش درست است. این شعرش اشاره به کدومه که از اشعار حافظه همین که فرمودید با کمال شرمندگی به ارس کنم از تقریبا اکثر اشعار حافظ تو مخصوص ارس کنم در این عبیات علم نتول الله که در میکده باز است باز ده. اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند دل قوی که از بحر خدا, خدا رو بشاید. شد که اهل نظر بر کناره می رفتند هزار گونه سخن بر زبان و لب خاموش. ده. ده. در حال همه برای این زمش بودن فردوخی سیستانی عیاش میخاره بارها راجع به ماه رمزان و اید فطر سخن گفته و قصیده سروده از جمله در سکرامه بردم این محبه تراویح و به تسبیح به سر باده میخواهد میگوید نه همه تشنگی و گرسنگی باید خورد نوبت گرسنگی خوردن بردیم به سر یک محصا چنان بودم کبدال بوند یازده ماه چنین باشم و زین نیست متر افسوس که سروش اسفانی همین مزموره گرفته و بازبانی زبانی خیلی ضعیفتر این طور سخته بودم یک ماه پارسای زمانه اید مرادا پارسایی بربارد انصافا خیلی بد ساخته. تحمس <تصفح> الله <تصفح> خاله و گاه میشد که آسمان ابر بود و ماه دیده نمیشد و در اون روزگار هم تلگراف و اینا ها زیاد نبوده که بتوانند اصلا نبوده همیشم <تصفح> <صحن> نبوده این مرداری تلگراف بوده که ببینده اما آخو شاعری که من راضی به اون صحبت میکنم در همون اگه بودن که تقریبا نخستین سیم کشی تلگرافی در ایران معمول شد به این جرد گفتنم تقریبا نبوده خب جمعبالی که در این قسمت در صورت ساحب رأی همه دیگه چون صاحب تاریخ, تاریخ مفصلی امرازه به رابطه تاریخ ارتباطات بطور دقیق نوشتیم امیدواریم یه روزی برنامه‌ای داشته باشیم با شما تاثیر پست و تلگراف پارسی از شما هست تو واقعا نمیدونم درعکس روزی که پیام یار می‌برد نسیم تیار نبود تلگراف بیسیم بله بله بشار کسان دیگه هم صحبت کی که این سینو تلگراف خبر بر از من ور شاهزاده اکبر <تصفح> که به دستور دولت فرهاد میرزا نوشته در آلی. مقدمه یکی از چیزاست باز راجع به ساختن تلگراف و اینها قصیده ها و چیزها مده دیدم اگر دست دیو زرز بکنم هر بالا در یه موقعی که هوا ابر بود و هلال دیده نمی‌شد و تلگراف هم همونطوری که کردم نبود که از بغداد مثلا خبر بدن که از جای دیگر از شهر دیگر از هلال دیدن بگویند که ما دیدیم شما هم ببینید به قول مرحوم ایرج از ما این کاری کردیم شما هم این کار رو بکنید این شاعر اوقات سر شده حلال ایر نتوانسته ببینه و میخاری از دستش رفته این شاعر صحاب اسفحانی است که میدونید صحاب اسفحانی خیلی هم حجب کردن از شعرا زیاد در یک قصیده خیلی دلنشین به این نکته اشاره میکنه که مطلعشه فقط ارز میکنه مفصله شرم از عبرو یا اون عبرو کمان کرده آسمان و شرم از عبرو یا اون عبرو کمان آسمان زون هلال اید را امشب نهان کرد آسمان وانی با شوختبعی خودش البته او زیاد راجبه ماهای رمزان و داره کنم با زمانهای تقریبا گایم رکید یاد میکنه ولی در, اینجا قدی... در اینجا یه قدیه معدب تره منحازه با اون شوق طبیع خودش یه چکامه در شروع ماه رمزان داره که ساخته که یکی دو بیتش از میشه و شنانگانگرامی میتونن بقیه یه داره در ایرانش که همه جا هم هست ببینم ماه رمزان آمده ای ترک سمنبر یا ای ترک سمنبر نیم کدومش درسته که ای ترک سمنبر, سمنبر. بر خیز و مرا صبح هوا سجاد بیاور اون مصحف دیرینه که پاری نزد مجلس بردی به شب عید نا آوردی دید دست مازارو بدن میخواد بگه طرفم دستش کج بوده بردی نه برده چون قرآن خون نبود اونم اون نزدیکه طرف باز مازارو بد علیدم جواب اینو نمی میده میگه قرآنی هم وجود نداره علاوه میره از خونه امسای میاد میگه یادش نیست که اون قرآن خالص چجوری بله بازارو بده تا که بخوانم دو سه سوره قفران پدر پدرها همون آسایش مادر به نیتور که از شد جمعی شعرها با حفظ حرمت ماه رمزان آمدن اید فطره به فال نیک میگرفتند و شراب و ساز و آواز میخواستند منحازا هستن کسانی که مثل منو در اظهار خوشنودی از پایان ماه رمزان افراد نمی کنند او از کسانیست که خیلی بی بیپروا بوده در این موضوع و میگوید که ماه رمزان رفت و مرا رفتن آن به اید رمزان آمد علم نه تو لله اون کس که بود آمدنی آمده بهتر اون کس که بود رفتنی او رفته شده به بر آمدن اید و برون رفتن روزه ساقی به دهن باده بر باقو به سبزه من روزه بدین سرخترین آب گشایم عزب روزه خوبی من روزه بدین سرخترین آب گشایم زن سرخترین آب مرا میده و مسته شیخ عجل سعدی شیرازی منظور شربت الوالو بوده شربت هر آب سرخی که شراب نیسته یکی از شراب بوده به نام قزنفر کاشی روزی در خانهش در حجرست نشسته بوده چند نفر از طلاب آمدند رو دیدن بالای رف یه مقداری شیشه با آب قرمز هست یکی از اینو زد به پلون اینکه گفت بلایم نویخون یا در حتی شرابه شو من نمیکنه. این احساس کرد فوری برن شد دو سه تزیشی شا آب پایین و گفت که هوا گرمه آب انارگو یا بد نباشه ریخ توی گیلاش و شون داد و اینا خوردن دیدن چیزه خیلی شرمنده شدن در صداد خجرت دیگه نتوانستن بمونن رفتن فقط یه نفرشون که دوست رفیق و سمیمی بود مند قزنفر گفت رفقال خوب رنگ کردم آن ولی ما اینجا شبابان داریم شبابان دار سیکابان دیگر حالا خودم آقایت آبم قرمز بوده رفقال رنگ کرده دیگه حالا همین زد رفقال خوب رنگ کرده سیخ عجل اتمام ماه روزه مقارن با عواخه رزم بوده به این طور با این زبان نرم و سخن ملایم اشعار میداره و جنبه تنبخ اخلاقی رو هم از دست نمیده نگفتم روزه بسیاری نپاید نگفتم روزه بسیاری نپاید زمستان بد سختی سراید به به پس از دشواری آسانی است ولی شن آدمی را صبر کند شاعر آسمانی سخن ما حافظ حاجی بزرگ شیراز رحمت الله علی نیز درباره ماه سیام و حلال شوال سخنها داره که برای حسن خطان این گفتار که تا حدیب طولانی شد برخی از اونها رو ذکر میکنیم اگر چه سخنه اون ناشنیده نیست اما اگر هزار بار هم تکرار بشه باز تازه و شنیده نیست ساقی بیار باده که ماه سیام رفت درده قده که موسم ناموس و نام رفت عیب نداره ما این کلمه ناموس رو هم برای اینکه احتمالا بعضی اشخاص متوجه نباشن که ناموس یعنی چه؟ شهر بده بلی. بلی. بلی. بلی. بلی. بلی. بلی. که ناموس به معنای شهرت و آوازه هست و اینکه که میگوین ما ناموس هم هفت کردم یعنی حیثیت و آوروی خودم رو بله کردم ساقی بیار باده که آخه سیام رفت در ده قده ناموس و نام رفت نقد دلی که بود مرا صرف باده شد بخ نقد دلی که بود مرا صرف باده شد قلب سیاخ بود از اون در حرام رفت این حرام دو باز منی داره بله, بله, من بله شهر الله الحرام هم هم و حرام با من قرمت این رو فراموش کردم بتونه ارز کنم که اکثر شعرها قصاید یا قزلهایی ده که برای این منظور می ساختن به ستایش و مددایی ختم می بعضی از اونها حتی مطلع قصیده رو در مطل دو آغاز می مثل سامانی فرزند قانی، خذسته بر به دستور شاه، اید سیام فلک مطابقه و دولت رهی زمانه به کام. حافظه می پره کرده اما چطور و با چه زبان؟ این دست و آخر گل به بعضیی میخورن موسم گل اییدفتر بوده و در آخر بهار بوده. این دست و آخر گل و یاران در انتظار ساید به روی شاخ ببین و می بیار دل گرفته بودم از ایان گل ولی کاری بکرد هممت پاکان روز دار ترسم که روز هشت انان بر انان روید شیخ و خرقه رند شراخ حافظم مانند دیگران در اید فت یا ماهرمزان از شراب شخن میگوید. اما نحوه بیان او ره با شیوه شخن منو چهری مقایسه کنید و تفاوت اون رو در نظر بگیرید زنبه اشخ که از پخته شود هر خامی در چه ماه رمزان است بیاور, بیاور جامی روزه هرچند که مهمان عزیز است ای دل صحبتش موهبتی دانو شدن انعامی توجه فرمودید روزه مهمان نیست عزیز وقتی که بیاید مصاحبتش موهبتیست آسمانی و اونگاه که برود از فیض و برکتی که بر جای نهاده است نعمتی بزرگ و منتی عظیم بر ما داریم اجازه فرمایلیم بازم تکرار بکنیم و بعد سکوت کنیم روزه هرچند که مهمان عزیز دیگ دل صحبتش موهبتی دانو شدن این آمین صحبتش موهبتی دانو شدن انعامی مده. عرایز بنده تمام شد استدامه کنم جنب آقای دکتر سجادی قبل آن... از سخن آقای دکتر سجادی اتضافه فرمایید که برای اینکه تنوعی در برنامه اجاد بکنیم از آقای ایرج و یارانش خواهش بکنیم که آوازی بخوانند و سازی بنوازند البته ایشون هم وظیفه دارن که با شعری مناسب آواز بخونند بله. و بعد میگیم بر سر سخنان آقای سجادی اگر از آقای ایرز بشود خواهش کرد که همین قزل حافظ که من درس کردم دو بیتش کدوم رو سیام رفت به خوب اگر این رو بخوانند به نظر بایده. من مناسب تر خواهش کنیم که همین کارو بکنم Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, <laughs> Obly catches for آقای نجاهی و آقای جانگیر ملک آقای شریف و آقای عصدالله ملک از همه شما سپاس گذاریم که برنامه خوبی بهشنوندگان عزیز در این روز مبارک تقدیم داشتید و حالا با سپاس از شما از آقای سجادی خواهش میکنم که سخن خودشونه آغاز بکنم تا ببینیم تحقیقات ایشان در شعر پارسی به مناسبت فطر و روز چیست آقای سجادی دلی. ارز کنم که من واقعا از مطالب دقیق جناب پجمان استفاده کرده خوب خیلی خوب بود خیلی خوب و یک سیری ولو به نظر کوتاه آمد در این دیوان شاعران به مناسبت ایدفتر کرده بودند و نمونه های خیلی لطیف و خوبی هم ذکر کردن البته شعر فارسی واقعا زمینه وسیعی در تمام موضوعات داره و هر موضوعی رو شعرهای فارسی زبان در بارش شعر گفتند بعضی ها شعرشون ابتکاری و خوبه بعضی ها شعر رو تقلید کردند از اونها همطور که اشاره فرمودید گاهی بد در آوردند گاهی مثلا کوشش کردند ایکی دو بیتر بهتر از قبلی ها در آوردند به هر صورت این یکی از موضوعات توی شعر فارسی هم خب این ماه رمزان است و اید فتر و اینها اتفاقا به مناسبت همین روزایی که اون مدار سال... بودن بعضی از اون مارندا کرده بعضی از اینا ارستم که در عین اینکه خب واقعا به ماه مبارک رمزان سخت احترام میگذارند و این عبادت یک ماهر رو خیلی خیلی هم محترم میشمورند و یقینا هم از گفته هاشون پیداست که خودشون انجام دادند یک ماهر رو روزه گرفتند و عبادت کردند ولی با این حال خب روز اید فطر رو که یکی از دو اید بزرگ است و مخصوصا اون شعرهای قدیم ما مثلا تا قرن پنجم و اینها که خب این از جهت دیگری هم اصلا همیت خاصی داشته از جهت خود اون عقیده خاص مذهبیشون هم بسیار به این ایدها ترجه داشتن و پادشاهان و امیران اون زمان هم بسیاری از داستانها داریم جناب پیشمان که مثلا تاریخ بیهقی نقل میکنه در زمان سلطان مسعودی یا دیگران که این ایدفت رو خیلی با تشریفات انجام میدادن و به این جهت این شعرهای اون قرن یعنی را اقل دوره قزنوی درباره این اید خیلی سخن دارند. برد. و از جمله اونها همطور که اشاره فرمودید مثلا در درجه اول شاید فرروخی باشه که تقظلات خیلی خوب داره و من یکی دوتا از اونها رو یادداشت کردم یه چند بیتش رو که اگر اجازه می می‌فرمایید چند بیت خونم و بعد به یه نکته هم که توجه دارید اشاره می‌کنم اون این است که همطور که جناب علی فربودید خب در دوره بازگشت ادوی به اصطلاح از این فرروخی خیلی تقلید کردند مثلا این سروش اصفهانی که اصلا می‌خواد عین فررخی مثلا شعر بگه و حتی همین موضوع اید فطر و ماه رمزان را هم درست تباییت کرده از او منطقه شعر فررخی چیزی دیگریست و به قول عدیبان صنعت سهل و ممتنه ای رو که سعدی در قزل داره این در قسمیجه و تغذل داره انصافه یکی از قصایدش که چند بیتش در این مورد هست من ارز میکنن میگوید که آن دو هفته مهمن برد مه روزه به سر بامداد با آمد و از اید مراداد خبر مردمان دوش خبر یافته بودن ز اید که گمان برد که من قافلم از اید مگر او مگر تحنیت اید همی خواست بدین هیچ شک نیست همین خواست بدین آن دلبر من از این شادی برجستم و دوچنگ زدم اندرون زولف که با مشک زند بویش بر بر زبان داشت ز مه آن مه دو هفته سخن از لب او لب من یافت به خروار شکر طرف شکر... لب شکری بود بخدا خیلی قاعده از عید خبر داده و از سخنیش هم شیرین بوده در ماه شوال این تنگی و این تاریکی نیست این تو ب... تاریکی نیست این تنگی و تاریکی نیست تو به چشم دیگرم در ماه شوال نگار خطر روزه بزرگ است. خطر روزه بزرگ است و مه روزه شریف و از مح روزه گشاده است به خدندر در. راه بهشتی دیگه فرمانی به بزرگی, بزرگی. عزمت عزمت عزمت بزرگی. برد برد خطر روزه بزرگ است و مهر روزه شریف از مهر روزه گشاده است به خلدندر در, در. برد. برد. لیکن این ماه که پیش آمد ماهی است که او با طرب گردد و با رامش و با رامش گرد ماهیش اولم این طوره حالا این خطر همون خطرشو خطر کنز کامشیر به جور کار بزرگ بخوند البته اگر که میخواستی واقعا به شعر یکایک که شاعران در این موضوع اشاره کنیم خیلی طولانی می شود بعضی از این دیوان ها رو بن نگاه می کردم می که هر چند صفحهی مثلا ورق می نوشته درباره باره اید فطر و ماه سیام مثلا پرس کنم که خاقانی شروانی شاعر غرنش شوم که نکته ای که جنابالی اشاره فرمودی درباره نظامی درباره باره این شاعرم است فقط شعرهای قرنشتشون دوسته تاشون خیلی مردم زاهد متعصب در دین خیلی واقعا متقی و پریزکار بودن نمیشه احتمال داد که صحبتشون از می یا مثلا این شراب و اینها واقعا اون, اون می و شراب ظاهری است و مخصوصن این نظامی که یکی از زوها ده و اون کسانی که میگن این نو چیزها با هنر جمع نمیشه اشتباه میکنن این شاهکارهای شعر فارسی رو به وجود آورده است و هیچ گونه از این به اصطلاح اونچه که اصطلاحاً در زمان ما به زوفیات تعبیر میشه نداشته هیچ کدوم کدومها این نمونه حالان. کامل یک انسانی است که پر از زوق و شور بوده و چنین شاهکارهایی به وجود آورده و در این حال هیچ هم از این چیزها که در بین بعضی ها میگویند که لازمه مثلا هنر یا شعر هست نبوده هستن اعتیادی به این نوع چیزها نداشت نظامی در خیلی متقی بود بدون شک خیلی هم زندوست بود بله. به نحوی که وقتی اون دارای دربند اون کنیزک قدشاقی براش فرستاد، خیلی ازا را کرده و تنها پسرش که محمد اسم داره از این زنه نه. از اینست که این مرحوم یک وقتی داشته تالهی داشته که همچه که یکی از کتابهاش تمام میشده زنش میمرده خسروشیلش که تمام شد اون خانم دربندیش مرد بعد کتاب هف پیکرش تمام شد یکی دیگه مرده بعد جلد اول شرفنامه یعنی خلاصه سه تا از زناش تا اونجا که نوشته آره شوی خدا میدونه اونجا تا دیگه شاید مرده باشن ولی سفرشون رو نوشته که برده من یه مدبختی دارم که برای نوشتن هر یکی از این یه عروسی ای رو باید نصار کنم اون روز ایر از دوینا شادی بل. یک لطیفه بگیادم او دا آقای پیجمان یک زن بود هفت شوهر کرده بود و هر هفته به قول معروف و عوام سر هفتار خورده بود و شوهر هشتمی هم کرده بود هشتمی هم داشت می‌مرد زنه گریه می‌کرد می‌گفتش که عزیزم من نمی‌دونم تو اگر بمیری منو به کی می‌سپارم خب احمق نومی حالا <تصفح> <تصفح> <تصفح> بعضی مردا سر خوردن بعضی زنا هم کردن سلام بعد بله داخل در صورت قاغانی هم این نوع چیز داره و چنده ایتی از اون قصیده‌اش ایده صبح خیزان از دو آلم خلوتی بر ساختند مجلسی بر یاد اید از اید خوشتر ساختند حاطف خمخانه داد آواز که جمع از سبو پاسخش را آب لعل و کشتی زر ساختند تا دهان روزداران داشت مهر از آفتاب سای پروردان خم را مهر از زر ساختند چون لبه خم شد موافق با دهان روزدار سر به مشکالوده یک ماهش معکر ساختن آه. از پس یک ماه سنگنداز در جام برور ادداران رزان را هجله ها برساختن هم سبوه ای به از بحر سنگنداز عمر روزه جاوید را روزی مقدر ساختن الات اون سنگنداز یا کلوخنداز است که پیش از ماه رمزان یک روز قبل از ماه رمزان مثلا گشن میگیرند بلد. و میخارگی میکنند و اینها بلد. بعد هم به قولو معروف دیگه شیشه و اینها رو کلوخ و سنگ توش مثلا میاندازن میذارن لبه بام و لبه آخری حید فطر عاده این سنگانداز و کلوخانداز منظور اینه این چند بیت هم بد نیست از سروش خونده بشه میگوید که زمن هر آینه بر ماه روزه باد درود که دوش از اول شب کرد خلق را به درود یکی چه گفتش گفتش که سخت ماندی دیر یکی چه گفتش گفتش که رخت بستیزو مگوی بهر چه آمد مگوی بهر چه رفت رفتن آمدنش هر دو شاد باید بود نه روی در هم باید کشید از آمدنش نه دست بر دست از رفتنش به باید سود مم. کنیم خوشنو و راز خیش سال دیگر ولی سال دیگر اگه آمد خب باز به عبادت و اینا براخره خوشنودش بود براخره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> کنیم خوشنود او را زه خیش سال دگر زه پیش ما اگر امسال رفت ناخشنود. کنون چه باید یا حالا ماه رمزان رفته خب حالا چکار کرد حالا دستور بیده کنون چه باید نقل و نبید و ساقی کش خروش بربت و بانگ رباب و نقمه رود در نشات و در لحو ماه روزه ببست در آن چه روز فروبه است اید روزه گش پشت در رو اصل می روزدر قلام ساقی خیشم که حق اید شناخت به یاد ایید مرا یک دو ساعتکیین پیمون بود الب این شوهرای دوره قاجاریه و بعد از اون تا این دوره های اخیر هم عادتشون این بود برای هر ای شاید مثل قانی مثلا چندین شعر هم می ساختن که در مجالس متعدد مثلا خونده بشه البته اینجا چند شعری هم بنده باز یادداشت کردم از ملکوشاعرای صبوری که در دیوانش دیدم خیلی شعر برای ماه سیام و عید فطر داره خیلی زیاد ملکوشاعرای دربار حضرت رضا بل بله بله بله بله باز بل اینجا در روز عید فطر و یاد مذهبی میخونده دیگه اینها رو و منتا چند بیت از یک قصیدش اینه پنشش پید بیشتر نیست که بنده میخوانم. بد نیست این شعرها هم میگوید که تو بالک ای ماه هما فر شوال زنهار بمانی تو نکوفال و نکوحال مسباح شب قمزده ای مه فیروز مفتاح در میکده ای, ای مه شوال اصل فرحی فصل طرف باب نشاتی روح خوشی و جان سروری در آمال از چرخ حلال تو شب دوش و سرزد گفتی به سر خلق زند مرغ ترب بال شد بادگسار از تو دگر ساقی سرمست شد نعم سرای از تو دیگر مطرب قوار ساوق هله بر صاعد و در ساق بلورین از شوق هلاقل تو زند یاره و خلخال خند خلخ. این چند بیتم از ملکاشورای صبوریز البته چون مجال دیگه نداریم و باز می‌خوایم از آقای سهیلی هم استفاده نه کنیم یه اون شعر خودشون رو بخونن بنده اینجا دیگه ختم می‌کنم خیلی خیلی لذت بردم آقای پژمان و آقای سجادی تحقیقات بسیار بسیار ارزشمندی داشتن و امیدواریم که شنواندگان بسیار سرمست شده باشند. بزرگ داشته این گونه عیاد رو همینطور میدونیم مبتنی بر وجود دین مبین اسلام میدونیم و پرچمدار این دین مترقی حضرت خاتم انبیا پیغمبر بزرگوار ما هستند بنده به رسم تیمون و تبرک با تقدیم قطع شعری به نام محمد که گویای میلاد این مرد استثنایی آفرینش هست برنامه رو پایان می‌بخشم زمین و آسمان مکه آن شب نورباران بود زمین و آسمان مکیان شب نورباران بود و موج عطر گل در پرنیان باد میپیچید امید زندگی در جان موجودات می جوشید هوا آغشته با بوی شفابخش بحاران بود شبی مرموز و رؤیائی به شهر مکه مهد پاک جانان دختر مهتاب می خندید تگویی ساحت ام ملقرا در خواب می خندید ز باغ آسمان nilگون صاف و مهتابی دم آدم بس تاره میشه گفت و آسمان پولک نشان میشد صدای حمد و تحلیل شباویزان خوشاوهنگ به سوی کهکشان میشد دل سیاره ها در آسمان حال تپیدن داشت و دست باغبان آفرینش در چنان حالت سر گل آفریدن داشت شگفتی خانه ام القران در انتظار رویدادی بود شب جهل و ستمگاری به امید طلوع بامدادی بود سراسر دستگاه آفرینش اضطرابی داشت و نبض کائنات از انتظاری دم به دم می‌زد همه سیاره ها در گوش هم آوسته میگفتند که امشب نیمه شب خورشید می تابد شرق آفرینش اختر امید می توبد. در آن حال آمنه در عالم سرگشتگی میدید به بام خانهش بس آبشار نور میبارد و هر دم یک ستاره در سرایش می چکد رنگین و نورانی و از این قدرت نمایی ها نصیب او شگفتی بود و حیرانی دراندم مرغکی را دید با پرهای یاغوتی و منقاری زم و رتفام که سویش پرکشید از بام و در سحن سرا پرزد و پرهای پرندین را به پهلوی زن درداشنا سائید به ناگه درد او آرام شد آرام به کوتح لحظه گردان سر را آمنه با حاله امید تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تاوید چو دیدان حاصل کون و مکان و لطف سرمد را دو چشمش بغزد تا دید رخشان روی احمد را شنید از هر کران حطر دلاویز محمد را سپس بشنید این گفتار وحیامیز علا ای آمنه ای مادر پیغمبر خاتم سرایت خانه توحید ما باد و مشید باد سعادت هم جان تو و جان محمد باد بدو بخشیده ایم ای آمنه ای مادر تقوید صدای حضرت داوود و حب دانیال و اسمت یهیا به فرزند تو بخشیدیم کردار خلیل و قول اسماعیل و حسن چهره یوسف شکیب موسی امران و زهد حضرت ایسا دو دادیم خلق آدم و نیروی نوح و طاعت یونس مقار و سهلت الیاس و سفر حضرت ایوب بود فرزند تو یکتا بود دلبند تو محبوب سراسر پاک سراپا خوب مرسید. دو تو گوش امن بر وحی ذات پاک سرمد بود دو چشم امن در چشم رخشان محمد بود مرسید. که ناگه دید چهر دخترانی آسمانی را به دست این یکی ابریغ سیمین در کف آن دیگری تشت زمرد بود دگر هوری پرندی چون گل محتاب در کف داشت محمد را چون مروارید قلطان شستشو دادند به نام پاک یزدان بوسه‌ها بر روی او دادند سپس از آستین کردند بیرون دست قدرت را زدند از سوی درگاه خداوندی میان شانهای حضرتش مهر نبوت را سپس در پرنیانی نقرگون آرام پیچیدند و از آنجا آسمانی دختران بر ارض کوچیدند همان شب قصه پردازان ایرانی خبر دادند که آمد تکسواری در مدائن سوی نوشروان و گفته ای پادشاه آتشکدے آوزرگش است ما که صدها سال روشن بود همم شب ناگهان خاموش شد خاموش به یسرب یک یهودی بر فراز قلعه فریاد را سر داد که امشب اختری تابنده پیدا شد و این نجم درخشان اختر فرزند عبدالله نوین پیغمبر پاک خداوند است وجودی بس کرامند است یکی مرد عرب اما بیابانگرد و صحرایی قدم بگذاشت در ام القرآن وین شیر را برخاند که ای یاران مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید چه کس دید از شما آن روشنان آسمانی را چه دید از مکیان آن ماهتاب پرنیانی را زمین و آسمان مکه دیشب نورباران بود هوا آقشته با عطر شفابخش باران بود بیابان بود و تنهایی و من دیدم از هر سو ستاره در زمین ما فرود آمد به چشم خیش دیدم ماه را از جای خود کندند زهر سو در بیابان عطر مشک و بوی اود آمد بیابان بود و من اما چه محتاب دلارائی بیابان بود و من اما چه اخترهای زیبایی بیابان رازها دارد ولی در شهر آن اسرار پیدا نیست بیابان نخش ها دارد که در شهر آشکارا نیست کجا بودید ای یاران که دیشب آسمانی ها زمین مکه را کردند گلباران ولی گل نه ستاره بود جای گل زمین و آسمان مکه دیشب نور باران بود حوا آغشته با بوی شفابخش بهاران بود به شعر آن عرب مردم همه حالی عجب دیدند به آهنگ دلانگیز عرب این شعر را خواندند و رقصیدند که ای یاران مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید چه کستید از شما آن روشنان آسمانی را که از مکیان آن ماه تا پرنیانی را زمین آسمان مکی شب نور باران بود هوا آغشته با عطر شفا و بود بیابان بود و تنهایی و من دیدم که از هر سو ستاره در زمین ما فرود آمد به چشم خیش دیدم ماه را از آسمان کندند زهر سو در بیابان عطر مشک و بوی اود آمد بیابان بود و من اما چه محتاب دلارایی بیابان بود و من اما چه اخترهای زیبایی بیابان رازها دارد ولی در شهر آن اسرار پیدا نیست بیابان نقش ها دارد که در شهر آشکاران نیست کجا بودید ای یاران که دیشب آسمانی ها زمین مکه را کردن گل ولی گل نه ستاره بود جای گل زمین آسمان مکه دیشب نور بود هوا آقشته با عطر شفا بخش بود روانت شادمان بادا کجای ای, ای عرب ای ساربان پیر سهرائی کجای ای, ای بیابان گرد روشن رای بدهای که اینک بر فراز چرخ بینی نام احمد را و با هر موج بینی اوج گلبانگ محمد را محمد زنده و جاوید خواهد ماند محمد تا و بنده چون خورشید خواهد ماند جهانی نیک می که نامی همچون نام پاک پیغمبر معید نیست و مردی زیر این سبز آسمان همتای احمد نیست زمین ویران باد و سرنگون باد آسمان پیر اگر بینیم روزی در جهان نام محمد نیه. ما سکوتمون ها به علت عظمت مطلب بود و هم تشکر. به علت لطف شعر شما باونست <تصفح> خوب میشنویده خب حالا با اجازه سروران و شدوندگان عالی قدر و تقریم شادباش های مجدد به این برنامه پایان میبخشیم و آرزو میکنیم که در پرتوه مهر خداوند و در پناه آین مقدس اسلام سربلند و سرفراز بمانید